سلام و درود من فرزان فرامرزی هستم و شما شنونده پادکست خودمونی هستید دوستای عزیزم امیدوارم که حالتون خوب باشه و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید این هفته هم در ادامه پادکست هفته گذشته که به موضوع پناهنده ها و کار و تحصیل در آمریکا پرداختم با یکی از دوستان صحبت کردم که برای ادامه تحصیل از طریق ویزای دانشجویی به کانادا آمده. گفتم که این اطلاعات شاید به درد کسایی بخوره که دوست داشته باشن برای ادامه تحصیل از طریق ویزای تحصیلی به کانادا یا آمریکا بیان. با امین صحبت کردم امین لیسانس و فوق لیسانسش رو از دانشگاه شریف تهران گرفته و الان هم در مقطع دکترا در کانادا مشغول به تحصیل هست صحبت من با امین یک مقدار به درازا کشید اما امین انقدر مسائل رو ریز به ریز توضیح داد و انقدر دقیق توضیح داد که من واقعا هیفم اومد چیزیش رو حس بکنم خب بدون هیچ مقدمه این شما و این مساعده من با امین در رابطه با تحصیل در کانادا. سلام و خیلی خوشحالم که صدات رو من همینطور باز جان خوشحال شدم و که الان صدات با تک و هم, هم که قرار در اینام پادکست قبلی توام که, که دوست داشتم مولی شو از صدام ایقا خیلی عالی. خب جون نگاه من در مورد پادکست قبلیم در مورد پناهنده ها صحبت کردم. اینکه شرایط تو آمریکا چطور هست و از دید یه نفر که خودش به عنوان پناهنده تو, تو،, تو اومدی انا کانالده کانادا داری درس میخونی خب شرایطی که کسی که با ویزای دانشجویی میاد فرق میکنه قبل از این که به شرایط بپردازین بذار من ازت این سآل بکنم که تو تو ایران دانشگاه شریف رفتی لیسانس و فوق لیسانس و تو اونجا تو بهترین دانشگاه ایران گرفتی <تصفيق> چرا چه نیازی حس کردی و قطعا میتونستی دکترات هم بری همونجا خب بگیری دیگه بله. چه نیازی احساس کردی و چرا چی سبب شد که بیای کانادا دور از خانواده، دور از پدر و مادر، دور از فامیل، دور از کشور بیای و دکترات بخواد توی کانادا بگیر. سالی که پرسیدی، یعنی یه سال نه، چندی سوال بود که وای جواب بدم ولی اگه بخوام کوتاهتر بگم سال بزرگتر نیست که اصلا چرا باید ادامه تحصیل بدیم آیا ادامه تحصیل برای همه خوبه؟ و بعدش که حالا اگر حالا که بین اگر جواب سو... به این سال بعده بود سال بعدی میشه که تحصیل کجا باید باشه؟ ایران... ایران بهتر یا اینجا؟ اول که به نظر من یه متاسفانه به دلال شهایت خاص کشور ایران و اقتصاد نامناسب بهش سیاسته هسته که دولت چند این چندین سال, چند سال شده از زمان رفت انجانی اینجوری بوده که برای اینکه بتون آمار بیکاری رو کارش بدن دست دادن به ایجاد محیطای دانشگاهی خیلی زیاد مثل دانشگاه آزار، پیانونی رو اینا و این باعث که یه فرهنگ کادفی شکل بگیره که الان یه مدرگرایی می‌تونیم مدرش نام ببریم شاید من هم تو همون موج قرار گرفتم اون موقع که بداخل خواستیم و حالا کهبانهای شام هستم. داشتم که دانشگاه خوبی در این شانس رو داشتم که دانشگاه خوبی درس بکنم. بعد این اینو بگم برای اینکه بگم اول تحصیل برای همه نیست و اینکه کسایی که میخوان ادامه تحصیل بدن، بعد بدانند که هزینه فرصت ادامه تحصیل بالاست به این معنی که شما میتونستید بعد از گرفتن معضلی دیسانت استمی یا حتی پنج هزار دیپلوم هدر بی دیگه کار بکن. و همون مدردانی که میخوان کار بکنید رو اگر دنبال پیدا کردن کار خوب و منفعت بیشتری هستید میتونید از اون مسیره پس نظرمان درست و یکی وقت خلف کردن میشه. این درست برای کسایی که صرفاً بدان تحصیل نگاه مدرگراریاه دارن نه اینکه واقعا شیفته ای بعد از که یه نفر این سوال رو خودش جواب داد من جوابم برای این بود که من فکر کنم که تو محیط آقادمیک محصوصا برای کار تئوری بهتر بودم تا طور اعمالی خودم رو هم محق زدم و حتی مدتی هم که بعد از خودی من کار میکردم تیران حس کردم که محیط کایر ایرانی دوست ندارم شرکت ما شرکت خصوصی بود ولی حال هم زیرا زدن و هم خودوم میشه کم توش کم نبود و هم اینکه من فکر می که این چیزی که اون علاقه شخصی من ارضا نمیکنه و که بخوام اینجا بمونم چون محیط دانشگاهی محیط خیلی پویاز و ما هر روز چیز جدید یاداد ولی و توی محیط کاری شما باید مدا خودت دکرار رو روکنین ا کارجوری باشه که شما بعد از دوستمان اول مده باشید همون کار کارتونی تکار بکنید و خاطر با این تجربه چند ماهی که من بعد از باقلستانس هم داشتم و این که فکر کردم که بهتره که من بیشتر دوست دارم مونیترو به همون خاطر تصمیم که ادامه تحصیل دارم اما اینکه چرا من کانادا را انتخاب کردم چرا خارج را انتخاب کردم برای ادامه تحصیل دلاله بسیاره اول اینکه من نگاه هم یعنی هر آدمی باید اینطوره باشه برای اینکه بخواهد تصمی های زندگی شروع بگیره باید نگاه بلند مدت داشته باشه و یه به قول از شای بعد باید ویژن بیجن خودش رو اطلاعون اول مشخص بکنه من, من می‌خواستم یه مستاد دانشگاه باشم میخواستم یه ریسیرچر باشم یه محقق باشم به هم میخواهد حس کردم که باید توی این محیط خیل تو نهایی قرار بگیرم که حتی استادایی که تصمیم گرفتن تو ایران دنیدن استادهای خود من که دانشگاه های خوبی درست کنن، خارج درست کنن و برگشته بودن من از اونا پرسیدم از میدیدم اونا رو. وقتی که میدیدم اونا متاسبانه در درجا میزنن به خاطر اینکه نه اینکه مشکل از خودشون بود یه توانایی نداشتن نه خیلیشون اتفاقا قابلیت خیلی بالایی هم داشتن اما سیستم دانشگاهی ایران مخصوصا توی تحصیلات عالیه جوری به تعادل بدی رسیده از این منظر که به شما کمک نمیکنه، از شما بازخواست نمی سیستم که بهتر بشه. منطور که شما حیرت علمی میشید شید اونجا شما دیگه یه جوری گارانتی هستید این حالاته تو پاکیس قدرین در مورد هم مارژینه سیفتی محاجین اینجا هم صحبت کردی ولی ایوان از اینجا خیلی بدتره چون که وقتی که شما آنهایت این میموشید شما امنیتی شغل رو کاملا داری و اگر که تو اون قوانین جمعه اسلامی بخوایید اون قوانین رایت بکنید منظورم یعنی اون چارچوب شما اونو دارید و همینان بایدش میشه که اصلاتی در اونجا به یک دو, دو چهار بشن به،, به این من بود به این من که لجوم نمیدن تلاشی بتری بکنن به خاطر تحرین ها یا هر بحاده که میارن تلاش علمی دیگه نمی کنن کتاب های قدیمی خودشون رو میدن به خودشون زحمت نمیدن که بکنن. یه یهو وقتی نیرو هستو باشن و همین باعث میشه که وقتی استاد شما از شما نخواد دانشجو از استاد نمیخواد وقتی دانشجو از استاد رو نمیخواد و استادم نمیخواد که بهتر بشه یه چرخ باطلی درست میکنه که شما عملا برمیگنی به همون فصوق عادیه چون عملاً شما وقت علاق می‌کنم. با همگاه می‌خاطر من تصمیم گرفتم که با مشروعات اصاله نامر تصمیم گرفتم که بیام اینجا تو فکر می‌کنم که در راست‌های احضا بلند مدت من بوده و به این مسیر مسیح است که من دوستشم داشتم اینجا خب فکر می‌کنم که الان این مدتی هم که اینجا هستم فکر می‌کنم که تا تصمیم کنم. خب همینجان تو یه جورایی اشاره کردی به خوبصلا م خارج اومدن برای درس البته از دیدگاه خودت معایاش رو گفتی مزایاش هم موایبش گفتی مزایاش هم گفتی خوبی و بدی محیط تحصیلی هم گفتی یه سالی که حالا من قبل از اینکه اصلا برسم به سآل بعدیم خیلی خلاصه دوست دارم برای من بگی چون من اون مراحلی رو که باید طی کنی با عنوان یه پناهنده تا بیای مثلا آمریکا رو گفتم. خب میای ترکیه، میای میری سازمان ملل، همین مرحله به مرحله گفتم. حالا برای یه نفر که می‌خواد اپلای بکنه، درخواست بده برای تحصیل، بیاد و کانادا درس بخونه. خیلی خلاصه این مراحلش به چه صورت؟ یعنی از کجا باید شروع بکنه؟ ببینه. اول که بعد دو تا تقسیم بندی فیلگورد رو داشته بشیم حوزه این علوم مهندسی و اینکه هم علوم انسانی توی علوم مهندسی باز هم من جدا میکنم هم علوم مهندسی هم علوم انسانی به بخش مستر که اولیسانت و و پی دی وقتی که تیک یونن هستین اگر که بخواید برای یک رشته مهندسی اپلای بکنید مخصوصا برای کسی م... که می‌خواد بعد از کارشناسی مسی اپلای کنن برای فوق اینجا خیلی مشکل تره مگر اینکه بتونن از طریق ایمیل با اساتید اینجا را برقرار کنن بتونن از چند ماهو از اون با استادا مکاتبه با داشته باشن رو بخونن و خودشون رو در اون راهرو بدن استاد که رشته مهندسی استادی که خان داره یعنی استاد با سندت داره کار میکنه پانیمیش از طریق دانشگاه نیست و چون داره برای سندت کار میکنه اگر شما دانشجو رو باشید میتونه, میتونه درخواست بده که مثلا من به صورت تلویلی به شما میگم که من, من شما رو میخوام این پیش شما بعد شما بعد پرند استاندار رو بگیر برای که اینجا اگر که تو بوده عروم انسانی بخواید رشتایی مثل جامعه شیمسی اقتصاد یا اینا حالات بیشتر که نمیدنم رشتایی محرم رشتای قیدشکی که ولی برای این رشتا چون پاندین مال دانشگاهه و همین همون فاطعه فراین افتاد یه فراین استاندارد هست و استاد معمولا نقشی نداره برای گرفتن دانشگاه هستن از خارج از این محیط دانشگاهی امریکای شمایی و اینکه برای فروغالیسانس مولان این تو حتی سخته میشه چون که برای اینجا یا فاندینگ ندارن یا پول ندارن استاد که به دانشجو بده و یا اینکه دانشجو عموان دانشجوی فروغالیسانس چون هنوز محصرشون رو تمام نکرن با دیسانس شاید قابلیتی این رو نداشته باشن که در یک پروژی جدی قرار بگیرند و همین خاطر معمولا اصلافی سعی میکنند که خاندازن هاشون رو محدود کنند به بالاتر از دی این توضیه توضیه من الان مسیح رو بایم به شما میدهند مسیحی این این فرق آرامستان از ایران افضایه بکنه با فرد اینکه فاقالیستان رو ایران گرفته دانشگاه،, دانشگاه مهم هست چه دانشگاه ایران بودید اما دری که حالا معدل خوبی داشته باشید یا بتونید این تتصا اساندارتون به خوب از تش بردیاک ها میتونید بزن این احتهمان ال ها رو جابهجا کنید برای مثال فر کنید که را به جز بر دانشگاه خاص ایران مثل دانشگاه شریف دانشگاه امر دانشگاه تهران خیلی از دانشگاه متاسسفانه اینجا نمی و همین خاطر برند یک دانشگاه آدی از یک دانشگاه این دانشگاه اصلی نمیتونه از برنامه دانشگاه استفاده کنید. و همین خاطر باید تلاش خودش رو معطوف کنه به به های استانداری که باید بده. فرآیند اپلای از زمانی که شروع کنید به فکر کردن به اون سوالایی که خیلی مهمه. من اول صحبت کردن در مورد اگر که جواب شما به اون سوالا بلده بودن، می‌خواد در الان همون حرفا فرآیندش می‌شدن بعد از یک سال قبل از دامانی که شما میخواید تاکل کلاس گه اینجا شروع کنید. برای مثال اگر شما میخواید مهر سال بعد اینجا باشید، شما باید حتی دو تا بعد از از خوابستان سال قبل بعد پارلament اول شروع کرده باشید. شما رونمایی اینطوریه که شما بعد برای آزمون تحمل و آزمون جیاری بعد سخت بکنید همشگره که ثبت نامش هم بسیار چهجوری کریڈیت کارت پیدا بکنید که تو بعد ثبت نام بکنید بعد از اون رو برقرار نمیشه تو ایران اگر بخواید اگه بخواید جیمت بدید جیمت تو ایران برقرار نمیشه حداقل دو سال پیش که من اطلاعاتم برقرار رو قابل انجام میدید تا خود شما سعی شما دو تا این دو این دو تا از اون ثبت نام چند ماه برای اپل و جی بخونید دانشگاه یه, یه سر ریکارمنت دارند یه سری پیشنیات هایی برای دانشگاهی که می کنم بدن و شما بعد اون ریکارمنت ها رو باید میت بکنید معمولا یه مینیمومی برای طافل هست که مینیمومی برای بعضی از های عالمی دیواری هست و معدل شما هست و ریکامندیشن یا اون توصیه نامی که شما از اساطیر خودتون میگیرید اینا خیلی مهم و شما بعد یک سی وی یا همون رزومه خوبی درست کنید و بعدش بعد یک چیزی استیتمنت اف بینیدید مقابل تبونه شما این پکیج رو آماده می و هر سیکشن من در مورد هر کدوم از این سیکشن ها میتونم کنم در یک صحبت و خیلی هم بحث داره هر کدوم از این چطور و از سی وی آماده بکنید ولی که تو این مواد اما بهتر کلاته بعد بگم که سعی باید بکنین که این پکیج شما باید, باید یه انسجام منطقی داشته باشه استاد شما نمی‌تونه در مورد شما خوب بنویسه در که وقتی سی وی شما رو من نگاه می‌کنم، کنم ای او پی شما رو نگاه می‌کنم یا رویز نمرات شما رو نگاه می‌کنم، کنم نباشه یعنی باید جوری اینها فراهم بشه که هم رو تربیت بفن. هم افضایی داشته باشند بعدا شما آزمین تاپل جی رو برای مثال اواخر تابسکون یا اوائل مهر در ایران میدید نتیجه اون آزمین ها معالی دو هفته بعدش میاد پس افلایت برای دانشه حدود وجود اوائل جانبیه اینجا اواخر آزر به ایران میشه شما باید تو اوون و آذر بعد مدارکتون تکمیل شده باشه بعد با استادتون صحبت کرده باشید که حاضر باشن به شما ریکامندیشن بدن هم توصیه‌نامه باید حداقل 7 8 دانشگار بعد انتخاب کرده باشید که می‌خواد کجاها اپلای بکنید هر دانشگاهی نمی‌تونید اپلای بکنید بعد بذلت تحصیل خودتون رو کاملا با دونه نگاه کرده باشید و بعد دانشگار انتخاب کرده باشید اینطور نباید باشید که شما ی دانشگاه رو نگاه کنید از بالا به پایین از MIT و هاروارد trueپین بیت کوین نیست ولی اون سمت قضیه هر دانشگاه هم نباعد برید یعنی فکر نکنید برای خارج اومدن هر دانشگاه بعدتون بعدش اگر بخوام اینجا بمونید و کار بکنید اسم دانشگاهی شما مهم میشه یعنی بعد به فکر بعد از اون نشهید با فرض اینکه شما دانشگاهی س تو عالی که به در وم یه لیستی داره او را انتخاب شما افرا میکن. اون بخش آلیم یا دارتون رو مدنظم نیست هستن دانشگاه بود ولی بیشتر اینجا ایمینجی که دانشگاه دارن برای موقع اینجا بداخل را به تو ایران هم اگه حیات علمی دانشگاه سرطرید بخواید بشید از هر دانشگاهی کار را تحصیل شدن نمیتونه برای شما فرام بکن بعد همه اینا که شما انتخاب میکنید دانشگاهتون انتخاب میکنید به کارمند دانشگاه رو یه تایپ کنید صفحه صفحه اکسل باید درست بورد تاریخ عضو همون دانشگاه رو بعد بنویسید نمره نمره مینیمم که میخواد بعد بنویسید معمولا هر دانشگاهی هزینه برای برای واسس کردن مدارک شما میخواد چون چیزی بین 40 50 دلار تا 110 120 دلار هر دانشجو کانادا معمولا هزینه بیشتری این طرف رو کردن 120 دلار حتی تا 100 دلار دلار کانادا بده بعد شما این فرمی که اپلود میکنید که رو بعدن بعد این دانشجو اجازه میدن که مدارک رو اپلود بکنید توی خود سایت بعد از اصل مدارک رو میخوای اصل مدرک ترجمه شده اون که بعد این فرآیند انجام میدین شما مداره که تون آماده میکنید یه پروفایل ضرورت می‌کنید که ای دانشگاه هایی که افلایی میکنید بکنید هشتا دانشگاه بعد نتیجه آزونی تاقل و جیرهی شما هم تا موقع حاضر شده یک کودی هر دانشگاه توی ای تی اون به سایت تی ای س اون مؤسسه یک که تاقل و یک کودی رشته شما داره یک کود هم دانشگاه شما داره دانشگاه, که بکنی. شما اون کود دانشگاه رو همین رو بعد به این وارد می‌کنی کیس مورد شما سوال رو میکنه. می‌کنی دوگاهی می‌کنی به اون دانشگاه شما فقط به صورت آنفیشیالی به جای غیر رسمی تون پروفایلی که تو دانشگاه درست می‌کنید نمرات تاپل و جای خودتون رو وارد می‌کنید بعد میچ باشه با اون چیزی که ریپورد میشه خاصی نمی‌تین از کویتون بدین بعد که شما آپلود می‌کنید منتظر می‌شید که نتیجه شما میاد نتیجه شما بیاد، یه چیزی بین از یک ماه بعد از شروع می کنند به مشخص شدن اگه دانشگاه خیلی خوب باشید دانشگاه معمولا به طور غیررسمی پذیرشتاشون رو شروع می کنند یه, یه گیم بین دانشگاه اتفاق می پس به صحیح غیررسمی دانشگاه خوب می و آخرین دریزان برای دانشگاه های امریکایی دانشگاه کانادایی می کنید می کنید دانشگاه های امریکای 15 هست این تا 15 تمام هست. جواب ها رو میدن، تام کچه‌ای که میخوان پذیرش بگیرن و پذیرشاشونو بهشون میدن، نامه فاندینگ رو اوناشون بعد از اون امید میکنن یا ایده خیلی قليلی هم هست که ممکنه جواب فقط رو برد... آ... بعد از و بعدا ممکن دونش بگیرن. چند جا رو اکسپت میکنن، نه جا رو برن، آ... به همین دلیل بعد از چند تا جای خالی هست، اونا رو پر میکنن. به واسه نتیجه آ... پذیرش شما میواد آ... آ... چیدی حوالی عید نور ایران میشه اگر ایشتما نکنم بیشتری نتیجه تا اون موقع میاند و بعدش دیگه شما بعد به توی این فرایت بعد از این یعنی اینکه ممکن دانشگاه مداره که از شما بخواهد دانشگاه امریکایی اگر پدیرش به شما بدهند یه مداره به اونگاه به اسم آیتونینی برای شما سوال یا این اصل اصلی مذک رو باید شما پست بس حالا بس خود این هم مشکلاتی داره پست با پست ایران درست نیاره این اتفاق بسته معمولا بچه ها اینجا دوستانی دارن خانمه‌های دارند اینو پست می‌کنند و اونا سنگاه با پست سریع سریع باید پستند چون داره باید دانشان اینجا معمولا با پست عادی ایران، بلکه فرم آیتوینی به دست شما رسید توی ایران شما این طول واجد وزارت عضویته. اگر شرایطی داشته باشید، بگم با اگر داشته باشید، یعنی سیشن تام کنه، یعنی وزارت خودی برای شما اگر شرایطی داشته باشید، معافیت صادر میکنه. از شما ادامه تحصیل شما برای دانشگاه از وزارت علوم به میشه. شما بعد باید روزه نظاموندیه، نظاموندیه مواقع دیست و شما رو دوباره بطور رسمید برای اون مدت تخصیل شما سازم میکنه اگر با سرباز باشید شما باید وسیقه بدهید که تا دو ساله که شمیلت ملیون بوده ممکنه بیشتر بشه باید باید هم در نور اون هم کنید بس طور وسیقه رو بدهید که آیا وسیقه رو نروی بهش میکنید اون هم یه بس دیگه است که هر کنی رو باید دنبال بکنید بعد همین کار که انجام میدید مداره که شما آزاد میکنید بعدش باید وقت سفارت رو سف... وقت سفارت هم معمولا بچه های ایرانی یا ترکی میرن یا ارمانستان میرن یا, آ... یا امارات میرن شما میتونید با وبسایت سایت سفارت امریکا رو من دارم برای کانادا از وقتی که با قبلی من گفتم ایران با انگلستان مشکل گره کرد، سفارت کانادا از ایران سفارت کانادا هم خودش از ایران دوباره کرد، و مخاطب شما مجبوره که ترکیه بره، ایرانی مجبوره من آنکارا و استانبول میره، بعد شما میگید یه فرنی مصاحبه دارید، چون فرنی مصاحبه, مصاحبه دارید برای کانادا مصاحبه دارید، برای کانادا فقط انگوش نگاری هست بعد که مصابه انجام میشه با شما شما برمیگرد نیگه کاری از دست شما بر نمیاد به مطبع کلیرانس میشین ممکنه کلیرانس دون دوسته هفته تا حتی چند دوسته ماه تو بکشه معمولا تا پرموده موردان سال بعد این فرانت میکشه شما معمولا بیگه تو آماده میکنین وقتی کلیرانس شما اومد تو به بعد از اینکه اسم شما به شماره شما این تیکت دومبر شما میاد و بعدش شما یا خودت خودواز میرید بوده یا پاسپورت نمیدیدین ده بونگوی که اصلا داخل تیکته و ویزا ویزار ویزا رو پاسپورت شما میکنه و بعد دومیت میه می اینه این کوزی برنامه کنید خب امین انقدر تو دقیق توضیح دادی و تاریخ ها مبلغا اینقدر همینطوری دقیق گفتی من ازت راست خواستم خیلی خلاصه بگی ولی اینقدر دقیق گفتی من اول اندش دلم درم تو رو کات بکنم و تو حرفت بپرم دو اندیش من فکر می هر کسی هر سوالی که داشته باشه این قسمت رو میتونه اینو سیف بکنه ضبطش بکنه و این رو مرور بکنه و طبق این پیش بره تاریخ ها مبلغ ها همه چیام هم که تو نوشتی هی اینا رو با هم همه کنه و کاراشو انجام بده. آره این سایت هم هستش افرای عبود هست و بچه ها میتونن اونجا رو نگاه کنم من خودم تو فرند هدار افرایت بدم اون نگاه کنم هر سکشینی از این چیده که من به شما گفتم داستان جدای خودش رو داره و دقیقه مراجعه هم میتونن و میتونن اونجا, میتونن اونجا مراجعه کنن و بقیه سوال رو نه اونجا بپرسن و هستن کسی که جامعه خیلی عالی من این آدرس رو از تو میگیرم و توی وبسایت هم میذارم که کسانی که اینو دارن گوش میکنن بتونم برن تو اون سایت و اطلاعات تکمیلی رو از اونجا بگیرم امین حالا وقت ما تقریبا داره تمام میشه من میخوام یه به عنوان سوال آخر خب به عنوان سال آخر میخوام از تو بپرسم که یه مقایسه بکنی زندگی در کانادا رو و اینکه آیا خب با همه خوبیش چیه بدیش چیه خیلی فهرستوار فقط بهم به بگو خوبیش یعنی توضیحات تکمیلی رو دیگه میذاریم به عهده بقولن به چون نظر تو هست من میخوام خیلی فهرستوار از از تو بشنوم که مزایای ترس خوندنش چیه؟ معایبش چیه؟ تو اونجا آیا الان راضی هستی؟ خوشحالی؟ و آیا فکر میکنی بعد از اینکه اونجا تمام شدی؟ اگه یاد باشه تو پادکست قبلی من از یه نفر نقل قول کرده بودم که میگفت اگه اینجا درس بخونی باید تا آخر عمرت دانشگاه تو دانشگاه کار کنی. تو هم گفتی که دوست داری تو محیط آکادمیک باشی. ولی آیا تو فکر میکنی اگر اینجا در کانادا فوقو تحصیل بشی آیا مثلا راه داره که بری بیرون در صنعت هم کار بکنی یا نه؟ یا نظر اون شخص رو که من از استناد کردن تایید میکنی خیلی خلاصه و فرستوان آره و که بسیگی به رشته داره و نمیشه در مورد هر رشته این رو گفت و بعدش هم که گفت از انتخاب دانشگاه توی روز اول فرنده احسای مهم میشه و این دانشگاه شما تاییم میکنه که شما میتونید توی جاب مارکت اینجا کار پیدا کنید یا نه و اینکه اگر بخوام مقایسه بکنم بله به اینکه برای مثال برای پیشتی استیدنسی که اینجا درس میکنه درس میکنه اینجا کار هتاف میشه به این معنی که اونها به شما پرون میدن که شما تحقیق بکنید و شما میخواین که کار با کفیت اراد بزنید یعنی اگر این به عنوانی کاملا یک شغل هرتهی شما شما موظفید که زمان, زمان بذارید از شما بازخواست میشه و اگر تو هر اون از این ها شما نتونید اون چیزهایی که از شما میخوان رو ارضا بکنید برای شما ممکنه حتی فاندین شما قدر بشه و منکنید برگیریتون ویدیو شما ویدیوی نایتیه از این تفاوت خیلی با ایران داره به شما دانشوی تو ایران حقوق یا نداره یا بهش میدن لیچی دهت خندگاه رسیمتونم سی ست هزارتان، سی من درست نمیدنم تو ایران مجبورن که تو اون نظامی که من پودی خیلی به نظر من و مریض هست مردم چون نظام دانشگاهی ناقص هم درس بخونن و هم باید کار بکنن که بتونن مستقر باشن و متاسفانه میتونن درست درس بخونن به نظر من بعد میذارن درس کار بکنن چون نمیتونن خصوصا کار بکنن که اینکه خصوصا درس بخونن کیفیت اون پایین و عملا به خطر و متاسفانه از به نظر من تاثیرات دانشگاهی برای کسی که بخواد ده تحصیل بکنه که کیفیت دانشگاهی مون هم به حوزه اصلا سواده نیست باید انتخاب کرده باشید چون باید به این ها بکنید نمیتونید به خاطر اینکه فقط دکتر را بگیرید یا بتونید افلاقی کنید دیگه خانش حتما انتخاب بکنید چون اینجا بتونید حتما سخت میدره شما باید ساعت ها درشت بکنید مطالب و تعریم باید باشید و باید آمده باشید توی سمینار ها تاک داشته باشید در آن روز ریسرچ خودتون میخوام دیده اینجا افران سواده نیست یعنی شما باید فکر نکنید که اینجا دنگی سواده هست. افران اینطوره نیست اون که میشه از که بگم همه حتما خانواده خودتون از دست نیست بله از و مهمتر از اون دوسته خودتون و ممکن از دست بدین ایران داراتوه اینجا دوستان برای شما انتخاب میشن یعنی معنی که شما شما دیگه کسایی که ایرانیه که اینجا زندگی کرد رو به حال دوست نمیذیرین شما دیگه هاگر انتخاب زیادی ندرید یعنی ممکنه به اون اصول که شما داشتید امکان نباشه نفی خیلی اساس زمینیت بکنه تو ابوالات و مشکلاتش هم زیاده و اینجا حالا مثلا اینکه که میان، که من تقدم ممکنه توی امریکا برای پیش دیرسی دونده متعهد فیلی سخته ده کن با بروهای F2 همسرشون نمیتونه کار بکنه نمیتونه درستان نمیتونه بکنه اگه افلاق بکنه آقا بشود یا نشود و اون ممکنه حتی کسی که متعهد میان امریکا شده و من هم شنیدن ممکنه رابوتشون حتی بین زن و شوهر به هم به خاطر اینکه یک نفر حس میکنه که داره فداکاری کرده برای اون شخص دوبون برای که بیاد اینجا بخاطر یک فضای قرار میگری که فضای دانشگاهیه و مثلا همسر به اون جونستان فکر میکنه احتمالاً پاییدتره اگر چون نمیتونی کار بکنه مذیعت کانادا اینجا بر متعلیمی که همسر نمیتونی کار بکنه و همون خاطر در از هم کانادا یک اجاییت برای من از این دوات که تا منو من شامل چیزای دیگه هم انتخاب واگذاری نیستو بله من فهمم که بعضی خوبه که گفتم اگه فکر چیزی رو ناقص کنم خیلی خیلی کامل و جامع به نظرم صحبت کردی و امیدوارم که کسایی که این برنامه رو گوش میدن و دوست دارن که بیان آلا کانادا آمریکا یا هر کشور دیگه برای تحصیل خب بیشتر فکر بکنم همونطور که گفتی یه تصمیمی هست که فقط این که من عشق خارج رفتنم حالا اپلای می‌کنم دانشگاه میرم درس می‌خونم صرفاً دلیل اومدن خارج نیست چون همونجوری که گفتی و خب خود منم تجربه کردم حالا تو حتی تو هم مقطع لیسانس واقعاً ازت کار میخوام واقعاً درس میخونم. این اینجوری نیست که بازی باشه یا مثلا شب امتحان بتونی بری یه نمره بگیری قبول بشی بری و اینجوری نیست در واقع من متأسفم این وجه بیرونی ما وقتی که مثلا بعضی وقت فیسبوک عکسای اینجوری ما اینو ندارم کلمه گفتم وجهی هست که متأسفانه همیشه ما عکس چیزی هست که بهترین حالت ما رو به تصویر میکشه یعنی من اگر باید بافت کنم و نمیدونم عکس بزن بذارم به یا جای اجتماعی دیگه درست شبکه‌ریزی و درسته. اما وقتی معمولاً اونم میشه یه شاخص برای کسی که مثلاً این هستن هستن، اون بیان که تماماً همه ملت اینجا آقا خوش گذرونیدن به خاطر اینکه عکساشون مدرن می‌بینید. که اون چیزی که تبه پسون کشیده نشده اون زندگی واقعی اینجا. یعنی اونم هیچ شاهده نمی‌بینن مگر اینکه بیان اینجا تجربه کنند. و که من خیلی خوشحال شدم با تو کردم گردم میگه دارم که بسید همم هم ببینیم حالا از دو ماه همیشه توی یه عقا دوید قرمان شب و روزت بخیر همین جان خدا نگه دار خیلی خانون امیدوارم که از مطالب مطرح شده در این وبلاگ استفاده کرده باشید و اگر قصد تحصیل در کانادا رو دارید بتونید از مطالب و راهنمایی هایی که امین بهش اشاره کرد استفاده بکنید. در زمین ویب سایت رو که امین در زمین مصاحبهش اشاره کرد میتونید در وبسایت خودم در زیر همین پادکست ببینید و از مطالب اون وبسایت هم استفاده کنید. تا هفته آینده برنامه دیگه و موضوع دیگه خدایا رو و